از بدید یه تکه ای از مقتل در این رابطه براتون بخونم ثم التفت الحسین عن یمینیهی فلم یره احدا من الرجال امام حسین دیگه آخرین لحظات همه رفتن حضرت عبالفظم شهید شده یه نگاهی به سمت راستش کرد کسی رو ندید والتفت عن یساره نگاه به طرف چپ کرد، فلم یره اهدن، بازم شخصی رو ندید، فخرج علی بن الحسین زین العابدین عليه السلام و کان مریضن لا یقدر انیدل سیفه، امام سجاد در این حال دید پدر داره به سمت راست نگاه میکنه چپ نگاه میکنه و احدی نیست که یاریش کنه با اینکه مریض بود شمشیرش رو برداشت شروع کرد حرکت کردن ولی اون چنان در اون لحظات بیماری بر ایشون غلبه کرده بود که حتی شمشیر خودش رو نمیتونه حرکت بده و ام تنادا خلفه ام کلثوم پشت سر امام سجاد را میرو و فریاد میزد یا بنی یارجی ای برادر فرزاده فرزندم برگرد یا امتا ای ام جان من تو الان قدرت بر جنگیدن نداری فقال اله حسین و علیه السلام امام حسین با صدای بلند فرمود یا ام کل سمخزیه لعلا طبق الارز خالیه من نسل آل رسول ای خواهرم این علی ابن حسین رو برگردن که زمین از نسل پیامبر خالی می شود فلم ما فجع اله حسین به اهل بیتیهی و بلده ولم غیر او و غیرنسا و زراری نادا وقتی امر بر حسین تنگ شد کسی دیگه باقی نمون الا زنان و بچه هایشون نادا صدای بلندی درداد حلمن زاب بنیزوب و ان حرم رسول الله آرای کسی هست از حرم پی رسول خدا دفاع کند و حمایت کند حلمن موحدن خاف الله و فینا آیا یه مبحدی میشه در میشه میان ما که از خدا بترسد حلمن مقیسن یرج الله فی اقاستنا یه یاری کننده ای است که به خاطر خدا به ما کمک برساند و تفاوت اسوات النساء بالعویل صدای زنان به زاری بلند شد و تقدم علی السلام الا باب الخیما حسین مت به در خیمه فقاله ناولونی علی ابنی اتف حتی اوعد این علی اصخر منو بیاری ای کودکم رو ودا کنم و با او من بچم رو ودا کنم و خدا حافظی کنم یه دفعه گنداغه بچه رو آوردن حالا الان ما نقل که نقل شده است آتش کاری کرده که این بچه دیگه قدرت نداره نانداره گاهی روباب بچه رو بقل میکنه نمیتونه آرام کنه میده به زینه زینه بچه رو میخواد آرام کنه نمیتونه میده به کلسوم, کلسوم نمیتونه میده امام باغر علیه السلام چار سالشه میگه من اصطاده بودم اما من علی اصقه رو دادن به بغل جد من حسین حسین بچه رو کرد، داش میبوسید یا وقتی دیدیم بچه شروع کرد تو آغوش حسین به دست و پا پازدن هر ملی ایستاده بود و عمر سعد گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر را گفت سفیدیه که اسقه رو نمی بینید در برخی کتب خوندم بچه در اثر آتش این سرش رو بدنش بند نمی شد کج شده بود سفیدی گلو به این بود یه بقی بچه شروع کرد تو دامنه به در دست رو بازدن حسین مشتی از خون علی اسقه رو گرفت بازمانو باشید خدایای خوربانی کوچولو the good job.